دوستان دوم آفرین کجا بود آدم شیر پاک خورده ای که این همه پول را یک جا به من قرض بدهد من هم مجبور شدم از هر کدام از دوستانم نفری دو لیره سه لیره قرض بگیرم پول هایی را که می گرفتم توی کیف دستی ام می چپاندم کتاب توی چاپخانه حروف چینی شده و چاپ شده منتظر من بود چی برای گرفتن پولش فرت و فرت به هم زنگ می زد. من هم برای پول قرض گرفتن این در آن در می زدم. یک شب که از صبحش چی فرت و فرت زنگ زده بود و من مثل سگ پاسخته این در آن در زده بودم با سه هزار و لیر پولی که جمع کرده بودم به خانه برگشتم چون پولها را کم کم و خرد خورد از این آن جمع کرده بودم بیشترش اسکناس های دولیرهی و پنج ای بود. و درشترینش ده لیره ای. برای همین سه هزار و خورده لیره مثل چیز کوچکی که بخواهد خودش را بزرگ نشان بدهد، همینجور انگار باد میکرد و بالا می پول پولها را توی کیفم به زور جا می دادم. صبح روز بعدش این پولهای بیار را توی کیفم چپاندم و اول وقت راه افتادم. میخواستم فوری بروم پیش چابخانچی و کتابهایم را تحویل بگیرم. کیف دستیم را چون سالها این ورانور برده دیگر چیزی شده مثل دستم. مثل یکی از اعضای بدنم، فقط موقعی که کیفم به دستم است می تعادلم را حفظ کنم. اگر کیفم نباشد، تعادلم را از دست می دهم و یک وری راه می رفم. به اسکله رسیدم. گیشه بلیت فروشی بسته بود. توی سالن نشستم. کیف را پشت سرم روی تاخچه پنجره گذاشتم. پشتم را هم به کیف تکیه دادم که آنجا فراموشش نکنم. داشتم روزنامه میخاندم. سالن پر شد. درها را باز کردند. من هم رفتم به خریدم و سوار کشتی شدم. بین خودمان بماند. من را خیلی ها به حیب را سلام میدادم. سلام کسی که توی کیفش سه هزار لیر پول دارد جور دیگری میشود. سلام؟ سلام سلام قربان صبح شما به خیر؟ صبح بخیر حالا که شروع کردیم به تعریف کردن بگذارید راستش را تعریف کنیم دنبال یکی میگشتم که وقتی رو به رویش می بسری ببرم واقعا قصد بدی نداشتم یعنی با خودم می هم طرف خوشش بیاید هم چشمهایم لذت ببرند اما راستش روبروی به روی هر کسی مینشستم باعث عذابش می شدم. البته به این جنبه قضیه اصلا کار نداشتم. ما که شانس نداریم، هرچه جا روی زنهای خوشگل بود، آدمهای زرنگ قبلا پر کرده بودند. برای من هم از آن همه جا فقط یک بر روی زنی زشت خالی مانده بود. انگار برای ناراحت کردنم یک جا با شما از پیش برایم سوا کرده بودند. اما آقا... زن آنقدر زشت بود که آدم حتی برای خوشحال کردنش هم نمیتوانست توی صورتش نگاه کند. این را که زشتی زنه تا چه اندازه تأثیر گذار بود از اینجا بفهمید که روزنامه را رو جلوی صورتم گرفتم اما با صورتش را میدیدم. زن نبود. لامصب خاطره ابدی ابدی بود. یک دفعه که به صورتش نگاه میکردی تا عمر داشتی فراموشش نمیکردی. خدا خودش میداند. لابد او هم در مورد من همین طور فکر میکرده. داشتم با خودم می گفتم چه کار کنم تا از این وضعیت دشوار خلاص بشوم که یک دفعه در نیمکت سمت راستم چشمم به او افتاد. همین که دیدمش قلبم از جا کنده شد. درست 23 سال بود ندیده بودمش. به به تخت آنقدر خوب شده بود که پیدا بود شوهرش از آن دم کل افتاست. شنیدید که در مورد آدم های سر و حال و سرزنده میگویند، از لبهاش خون میچکه؟ از لبه او خون که سهل است. شیر و اصل میچکید. اول برایتان بگویم او کی هست؟ او روزگاری دختری جوان و ظریف مثل عروسک بود. او مرا دوست نداشت اما من او را دوست داشتم. برای خاطر این دختر شب و روز نداشتم. در آتش عشق میسوختم. محض رضای خدا حتی یک بار هم به من رو نداده بود بعد من او را از مادرش خاستگاری کردم مادرش هم زنی که بی شرم و خالفت کرد و گفت من دختری ندارم که به همچی آدم بی ای بدم اینطوری توی محل آب مان را برد خلاصه این او همان او بود دیدم روی نیمکت پنج نفره چهار نفر نشستند جلدی از روبروی زن زشت پا شدم و به مرد چاقی که آنجا نشسته بود. گفتم اجازه میدید؟ اینطوری کنار اون نشستم. گفتم چطورید سرکار خانم؟ باید در فقر زد. زن با شخصیتی بود. گفت تشکر میکنم شما چطورید؟ مرسی. منو شناختید؟ اه اه خب معلومه که شناختمتون. مگه قرار بود نشناسم؟ آن وقت ها که دختر توی خانه بود به من رو نداده بود. مادرش هم گفته بود بی آینده است و مرا رد کرده بود. حالا میخواستم انتقام انتخام بگیرم. با خودم گفتم هرچه باشد مشهور شدم. همه مرا میشناسند. کسی چه می حتما این زن هم توی دلش می گوید چه اشتباهی کردم با این مرد ازدواج نکردم؟ توی همین اوالم بودم که او یک دفعه پرسید راستی شغلتون چیه؟ به مارا باش ای خدا اگر دختری که نویسندهی زمانی خاطر خواهش بوده و به خاستگاریش رفته نمیداند که شغل خاستگار سابقش چیست؟ همچی شهرتی را باید گذاشت در خوزا و آبش را خورد خیلی پکر شدم خودم را جمع جور کردم سینم را جلو دادم و گفتم نویسندم دهنش را به چپ و تاب داد و گفت وای پس نتونستید یه کار درست و حسابی دست و پاک کنید حیف لابود داشت سر به سرم میگذاشت گفتم متعهلید گفت بله متأهلم شما چطور برای آنکه حرسش را در بیاورم کجکی نگاهش کردم و گفتم منم متأهلم بچه دارید بله اگر میگفت نه نمی پس اینطور اما من بچه دارم چندتا بچه دارید؟ پنجتا دوباره شکستم داد من چهار تا بچه دارم شما چند تا بچه دارید؟ برای آنکه از او بالاتر باشم پراندم هشتا چشمایش گرد شد بگید ماشاءالله ماشاءالله زن کی شده اید؟ اسم شوهرش را گفت از آن آدم های مشهوری بود که تا اسمش را میگفتند همه می شناختندش. از 26 میلیون نفوس مملکت، دست کم بیست میلیون نفر او را میشناسند. از لجم وانمود کردم، نمی شناسمش. پرسیدم، چی هستش حالا؟ گفت، الان رفته اروپا. لبهایم را همچی جمع کردم و با حالت احساساتی گفتم. حالا خوشبخت هستید؟ اگر از دهانش میپرید و میگفت خوشبخت نیستم از خوشحالی همانجا دوتا غیر میدادم و زود سر جایم مینشستم گفت چه جور هم؟ با خودم گفتم خب معلومه دیگه زن احساس. انتظار دیگه ازت نداشتم هیچ احساسی حساسیتی نداره که خب معلومه خوشبخت میشه از من پرسید؟ شما هم خوشبختید؟ و همچی خوشبختم که شما تصادف کرده اید؟ خواهش میکنم وقتی از آدم میپرسند شما تصادف کرده اید خب معلوم است که نمیگوید خواهش میکنم اما من گیج شده بودم از بس گیج بودم آنطور جواب دادم چند دقیقه پیش که اینجا میومدید دیدم همچی یه وری راه میرید برای همین همین که زن این حرف را زد دستم را به چپ و راز انداختم بعد فریاد زدم ای hey, وای بیچاره شدم من در وضعیت عادی یک وری راه نمیروم پس حتما کیفم همراه هم نبوده که یک وری راه رفتم همین جور داد می زدم بیچاره شدم بدبخ شدم ای hey, وای او هم همین جور نگاه هم می کرد و می خندید. داشتیم خوش و خورم میگفتیم و میشنیدیم و خوشبخت هستید شما خوشبخت نیستید و از این حرفا میزدیم که یک دفعه معلوم بود همچی از جا پریده بودم که همه به هم میخندیدند به طرف زن زشتی که کمی قبل رو به رویش نشسته بودم دویدم. خانوم کیف من اینجا نمونده؟ زن زشت از بس خندش گرفته بود نتوانست جوابم را بدهد این طرف میدویدم آن طرف میدویدم و همینطور داد میزدم شدم ای وای. بدبخت شدم چی شده آقا اتفاقی افتاده پولا رفت نمیدانم شما همینطوری میشوید یا نه در چنین مواقعی آدم یاد حواسپرتی و دست و پا چلفتی بودن خودش نمیافتد. و تنها چیزی که دربارش فکر میکند بدی دیگران است فریاد زدم پولم و دزدیدن او خندهکنان پرسی حالا مگه چقدر بوده؟ سه هزار لیره. منو بگو فکر کردم لابت خیلی زیاد بوده. ایوا، مگه آدم واسه سه هزار لیره اینقدر و هوار را میندازه سه هزار لیره بود. اما ده هزار لیره هم کنارش بود. در وجود آدمی زاد انگار اثری از رحم و شفقت نمانده سه هزار لیره من پریده بود. بیچاره شده بودم. آن وقت آنها به من میخندیدم. اگر توی وجودشان ذرهی رحم و مراوت داشتند دلشان به حالم میسوخت و هر کدام مبلغی میگذاشتند روی هم سه هزار لیره را جور میکردند و به من می دادند. تازه من هم که خواسته بودم برای او قیافه بگیرم پاک آبرویم رفته بود. یکی از آن میان پرسید به کسی شک داری؟ فریاد زنان گفتم خب معلومه؟ از ناخدا بگیر تا هر کی توی این کشتیه به همه شک دارم. یکی از مسافرها گفت از جیبتون زدن؟ نه توی کیفم بود نکنه بیرون جا گذاشته باشی یک دفعه یادم افتاد کیف توی سالن انتظار جامانده بود کشتی یواش یواش داشت راه می افتاد تنابها رو باز کرده بودند پلها رو برداشته بودند کشتی داشت از اسکله فاصله می گرفت به پا وایسا بابا، نه پر چیکار داری میکنی؟ کی گوش میکند؟ یا مدد گفتم و پریدم نه پریدم، این دوتا دست هایم بال شد و پرواز کردم مطمئنم رکورد پرش طول را زدم، اما هیچکس خبردار نشد همین که پایم به اسکل رسید، شروع کردم به فریاد زدن کیف کیف پنجره ای را که کیف را داخلش گذاشته بودم، نگاه کردم نبود کیف، کیف، کسی کیف ندیده؟ پسر بچه روزنان فروشی که آنجا بود پرسید چطور کیفی بود عموجان جان؟ کیف بود دیگه، کیف معمولی نو بود اه... همچی بگی نگی چرنگی بود قهوهی بزرگ بود متوسط والا من که ندیدم عموجان خدا بگم چی کارت کنه؟ کیف کیف صدای از میان جمعیت بلند شد من دیدم نظافت چی برش داشت این بار داد زدم نظافت چی نظافت چی با صدای از میان جمعیت بلند شد دادش به نگهبان اسکله کمی خیالم راحت شد نگهبان کجاست دنبال کیف میگردی؟ مان شما بود بله کیف مال من بود نگه اما کیفو به رئیس اسکله داد رئیس اسکله؟ رئیس اسکله کیفو برد به کلانتری کلانتری توی محوطه اسکله بود مثل گلوله دویدم قلبم داشت از دهنم میزد بیرون پله ها رو دوتا یکی تا یکی بالا رفتم و اولین در را باز کردم و فریاد زدم کیف دکتوری که داشت به بچه واکسن میزد پرسید چه کیفی؟ کیف من؟ چی شده گم شده کی بازجوی و ورکن آقا کیف کجاست برید طبقه بالا اینجا خانه بهداشت شهرداریه چندتا در اشتباهی دیگر هم باز کردم تا اینکه بالاخره توانستم کلانتری را پیدا کنم توی اولین اتاقی که وارد شدم چهار تا معمول بالییس بود فریاد زدم کیف چه کیفی گفتن رئیس اسکل پیدا کرده و آورده اینجا اتاق جننا رئیس کلانترری نگاه کنین، اتاق بغلی در اتاق بغللی را چنان با سرعت باز کردم که آنهایی که توی اتاق بودند بایست دستهایشان را بالا می بردند و تسلیم می شدند. هم پولها هم کیف روی میز بود. دو ها، پنج پنجلیره ها ده لیره ها روی هم جمع شده و تپه درست کرده بودند. انگار سه هزار نه سیصد هزار لیره بود. کیف هم روی میز بود. رئیس کلانتری و معاونش و رئیس اسکله و یک پاسمان آنجا داشتن پولها رو میشمردند. این پولها مال منه. هم مال منه. توی اسکله جا گذاشته بودم. رئیس کلانتری پرسید: از کجا معلوم کیف مال شماست؟ همچیز ثابت بکنم کیف مال منه که کس دیگه نتونه ادعا بکنه کیف مال اونه. توی کیف یه کاغذ هست که روش مطالبی نوشته شده. کاغذو در بیارین. رئیس کلانتری کاغذی را که رویش مطلبی برای چاپ در یکی از روزنامه ها نوشته بودم از داخل کیف درآورد. بله؟ الان من مطلبی رو که روی کاغذ نوشته شده از بر براتون میخونم. رئیس کلانتری کاغذ را به دست گرفت و گفت. بخونید. تیتر بالای نوشته اینه. دولت در راهی اشتباه است. رئیس کلانتری گفت. بله؟ معاونش انگار باورش نشده بود خم شد و تیتر نوشته ای را که در دست رئیس کلانتری بود خواند دولت در راهی اشتباه است. گفتم مگه اینطور نیست؟ اینطوره دولت در راهی اشتباه است. همین بس نیست؟ دیگه چی میخواین؟ اینو کس دیگه هم ممکنه بگه همه میگن ادامه شو بخونین در زمان دولت گذشته، در کلانتری ها شهروندان را کتک می زدند. امیدوار بودیم پس از گذر به رژیم دموکراتیک دیگر در کلانتری ها کتک از میان برود. حال آنکه در زمان دولت جدید هم در کلانتری ها شهروندان را کتک می زند. درسته جناب سرگرد؟ رئیس کلانتری که موقع حرف زدن من کاغذ توی دستش را میخواند گفت؟ درست آقا، درست. مگه اشتباهی داشتم؟ اشتباه داشتین اما بی اهمیته. شما گفتید در کلانتری ها شهروندان را کتک میزنند. مگه درست نیست؟ درسته اما باید اینطور باشه. شهروندان را در کلانتری ها کتک میزنند. اول باید شهروندان باشه. بعد کلانتری ها. فکر کنم دیگه فهمیدین که کیف مال منه؟ نه. ادامه بدین. اینها رو همه ممکنه بگن. من نوشتم را از بر میخواندم و رئیس کلانتری هر ازگاهی میگفت بله درسته وسط های نوشتم بودم که اخمای رئیس کلانتری توی هم رفت باز پرسیدم مگه درست نیست؟ رئیس کلانتری فریاد زد چه ربطی داره؟ البته که درست نیست یعنی چیزهایی که من گفتم توی کاغذ نوشته نشده؟ اگه توی کاغذ نوشته شده باشه اون وقت درسته؟ کارداش خراب میشد آمده بودم سه هزار لیره را نجات بدهم آن وقت کم مانده بود حالا که با پای خودم آمدم کلانتری صورت جلسهای بنویسند و به اتهام افترا زدن به دولت دادگاهی هم کنند به آخر نوشته رسیدم همه هایشان آویزان شده بود گفتم لا با دیگه فهمیدین که کیف من منه رئیس کلانتری گفت بله فهمیدیم برگشت به طرف پاسپان و گفت یه صورت جلسه و کیفشو بهش بدین به اتاق دیگری رفتیم. یکی از کارمندها با ماشین تحریر شروع کرد به نوشتن سورت جلسه. رئیس و نگهبان اسکله هم بالای سرم ایستاده بودند. با خودم گفتم چرا نمیروم به کارشان؟ کیف را پیدا کرده اند، به کلانتری تحویل دادهاند خیلی خوب. پس دیگر منتظر چه هستند؟ میدانم منتظر چه هستند، اما اینکه مثل ما در ها بالای سرم ایستاده اند اعصابم را به هم می صورت جلسه داشت آماده شد. آنها همانجور ایستاده بودند من هم با خودم میگفتم یعنی چقدر بهشون بدم اصل کاری اونی که پولو پیدا کرده نگهبانه بوده صد لیره بهش میدم رئیس اسکله که کاری نکرده درسته کاری نکرده اما پنجا لیره هم باید بدم به اون نه پنجا لیره کمه هرچی باشه رئیس اسکله هست موافقه نگهبانه باید به اونم صد لیره بدم اما آخه من از این پول حتی صد لیره هم نمیتونم بدم. پول من که نیست. قرض گرفتم. درسته. اما اگه پولو بالا کشیده بودن چی؟ همینجور یه دفعه دیویس لیره میره. اینم مالیات عواز پرتیمه. اما آخه اینا اینجور بالا سرم وایستادن منتظر چی من الان به هر کدومشون صد لیره میدم. کمه. اما توی روزنامه اعلامیه تشکر هم واسه شون چاپ میکنم. یه نامه تشکر هم واسه بانک دریا گناورد می نویسم و توش از خوبی اینا می نویسم. نفری صد لیر کمه. وقتی روزنامه ها بنویسن مردی به نگهبان اسکله که 3000 لیرش را پیدا کرده بود، صد لیره مزدگانی داد. اونایی که خبر رو می خونن میگن توف به روش. عجب آدم خسیصیه از کجا بفهمن من این پولو خورد خورد از این اون قرض گرفتم؟ شون لیره. نه نه نه، دویست و پنجاه لیره بدم. توی این فکرها بودم که دیدم صورت جلسه آماده شد. پلیس کارت شناساییم را خواست. کارت شناسایی همرام نیست. بیارین، اگه کارت شناسایی نباشه نمیتونیم پولو بدیم. چرا؟ خب اگه یکی دیگه بیاد و بگه پول مال منه، اون وقت چی؟ اگه کارت شناسایی باشه نمیتونه بگه؟ بله، اما اینطوری میدونیم پولو به کی دادیم؟ تا کارت شناسایی نیووردین از کجا بفهمیم شما کی هستین؟ ببینین، من عجله دارم. این کیف غیر ممکنه مال کسی دیگه ای باشه. مگه کسی دیگه میتونه نوشته های روی اون کاغذو از بر بخونه؟ درسته، حرفتون رو قبول داریم، اما... چند ساعت گذشت. نگهبان گذاشت رفت. اما رئیس اسکل بالای سرم ایستاده بود. کن نبود. از رئیس پرسیدند گفت. کیف بش بدین کس دیگه نمیتونم همچی ادعایی بکنه پلیس ها میخواستن کیف رو بدهند اما این بار رئیس اسکله گفت نمیشه آقا آقای محترم به شما چه ربطی داره؟ شما یک کیف پیدا کردین آوردین به کلانتری تحویل دادین کار شما تموم شده؟ چه ربطی داره؟ مگه اینطور نیست؟ شما چرا دخالت میکنین که کیف ها میدن یا نمیدن؟ نمیشه آقا من مسئولیت قبول نمیکنم. آخه به تو چه داداش؟ پلیس از یک طرف و من از طرف دیگر به رئیس اسکله التماس میکردیم. پلیس ها گفتند ما چی کار کنیم؟ رئیس اسکله گفت بذارین من به مدینیت اسکله زنگ بزنم. آها معلوم شد قضیه چیست. رئیس اسکله میخواست به مافوهایش بگوید کیفی که داخلش سه هزار لیره بوده پیدا کرده و برده به کلانتری تحویل داده. و اینطوری به آنها نشان بدهد که چه کارمنده است آنها هم توی پروندهش بنویسند آفرین. قصدش این بود. برای همین کار شکنی میکرد. حالان که اگر کار شکنی نمیکرد میخواستم توی روزنامه از او تشکر بکنم. برای مافقهایش نامه تشکرامیز بنویسم و با شرمندگی ازش خواهش بکنم دویست و پنجاه لیره مجدگانی را قبول بکند. خواهش میکنم کارم خیلی فوریه باید زودتر خودم برسونم نمیشه آقا باید به مافقه تلفن بکنم <تصفيق> باشه من فردا کارت شناساییمو میارم و این پولو میگیرم شما هم به مافقهاتون زنگ بزنید بهتون کارت صدافرین بدن آمدم بیرون روز بعدش هم رفتم و کیفم را از کلانتری گرفتم از آن به بعد رئیس اسکله هر وقت مرا میبیند در گوش بغل هایش پچ پچ چیزی میگوید دیروز توی کشتی یکی از دوستانم گفت خیلی کار بدی کرده ای چی کار کردم مگه مرد حسابی کیفتو گم کرده ای توش سی هزار لیره بوده اون وقت به کسایی که کیفتو پیدا کرده بودن سی لیره هم ندادی؟ گفتم بله که ندادم به آدم باوجدانی که 300 هزار لیره پولو پیدا میکنه و به صاحبش پس میده. باید دست کم هزار لیره داد من اونقدر پول نداشتم